اسب بادی این داستان از جناب رمضان علی دهقان از گرگان نقل شده یکی بود یکی نبود تو زمانهای قدیم مردی با زن و پسرش به خوبی و خوشی زندگی میکردند پسر اسبی داشت به نام اسب بادی اسب بادی اسب معمولی نبود بلکه جادویی عاقل، پیشگو و سخنگو بود و میتونست پرواز کنه و از خطر دور شه. اونا زندگی خوب و خوشی داشتن تا اینکه زن به بستر بیماری افتاد و خیلی زود از دنیا رفت. مرد دوباره زن گرفت و از زن دومم صاحب چندتا بچه شد. صبح که مرد برای کار از خونه خارج میشد، به هر کدوم از بچهاش پول میداد. به پسر بزرگش یک قرون و به هر کدام از بقیه بچه ها هر کدوم 5 شاهی میداد پسر بزرگ این پول رو برای خودش خرج نمی کرد و زه که برمی گشت با اون پول برای اسب نخود و کشمیش می خرید ولی باز نامادریش برای اینکه مرد به اون بچه از بقیه پول بیشتری میداد حسودی می کرد بنابراین تصمیم گرفت با کشتن اون کاری کنه که همه چیز به بچه های خودش برسه نامادری تصمیم گرفت برای کشتن پسر داخل نون سم بریزه هر روز صبح پسر قبل از رفتن به مکتب با اسب بادیش خداحافظی میکرد یه روز صبح وقتی برای خداحافظی پیش اسب بادی رفت دید اسب ناراحته پرسید اسب بادی جونم چرا ناراحتی؟ اسب بادی گفت نامادریت میخواد تو رو بکشه و برای این کار توی نون سم میخواد بریزه. به همین دلیل امروز زور وقتی به خونه برگشتی برو همون نون خشک رو بخور و اگر نامادریت پرسید چرا نون خشک میخوری من برات نون گرم و تازه درست میکنم؟ تو بگو ملامون تو مکتب گفته نون خشک بخورید تا دندوناتون محکم بشه. اصر که پسر از مکتب خونه برگشت نامادریش نون گرم و تازه رو آلوده به سم کرد و جلوی اون گذاشت ولی پسر رفت و از نونای خشک و سفت خورد نامادری پرسید چرا از نون گرم و تازه نمیخوری پسر گفت امروز مولامون گفت برای اینکه دندوناتون سفت بشه نون خشک بخوری نامادری که دید نقشش نگرفته تصمیم گرفت توی برنج پسر سم بریزه صبح روز بعد پسر موقع خداحافظی از اسب بادی دید بازم اسبش ناراحته دلیل ناراحتی اسب رو که پرسید اسب گفت نامادری دیمار توی غذا سم ریخته. زور که برگشتی همراه برادر و خواهرای کوچیکت نهار بخور و از نهاری که نامادریت برات میاره نخور چون مسمومه پسر به مکتب رفت و ظهر که برگشت رفت کنار برادر و خواهرای کوچیکش و از ظرف اونا شروع به خوردن غذا کرد نامادریش اومد و گفت الای قربونت برم چرا با این بچه ها غذا میخوری اونا توی غذاشون آب دهن ریختن و غذاشون کثیفه؟ بیا از ناهار گرم و تازهی که برات پختم بخور. پسر بهونه آورد و از اون غذا نخورد. نامادری که دید این نقشش هم نگرفته تصمیم گرفت نقشه جدیدی بکشه. صبح روز بعد باز هم پسر دید اسب بادی ناراحت علت رو پرسید. اسب بادی گفت امروز نامادری تصمیم گرفته جلوی در خونه یه چاه بکنه و داخل اون کارد و شمشیر و هر چیز تیز و برنده که میتونه توی اون بریزه تا تو توش بیفتی و بمیری. زهر که بخونه برگشتی از جلوی در خونه بپر. پسر زهر از مکتب برگشت و جلوی در که رسید از روی چاهی که نامادرش کنده بود و روشو پوشونده بود پرید و وارد خونه شد. نامادری که پشت در مخفی شده بود وقتی پریدن پسر را دید گفت الهی من بمیرم این چه کاری میکنی دست و پات میشکنه پسر به توصیه اسب بادی گفت مولامون گفته ورزش کنید تا قوی بشید نامادری دید هر جور میخواد پسر رو بکشه نمیشه و انگار پسر از قبل با خبره وقتی فکر کرد فهمید همه اینا زیر سر اسب بادیه اس تصمیم گرفت اول اسب بادی رو بکشه بعد پسر رو سر به نیست کنه به همین دلیل رفت پیش طبیب به اون مقداری پول داد و گفت من فردا با شوهرم پیش تو میام تو برای من کتاب باز کن و بگو برای خوب شدن باید جیگر اسب بادی رو بخورم صبح روز بعد پسر دوباره دید اسب بادی قصه دار و ناراحت گفت امروز دیگه چرا ناراحتی اسب بادی گفت نامادرید فهمیده من از نقشهاش با خبرم به همین دلیل تصمیم گرفته اول منو بکشه بد تو رو به خاطر همین خودش رو به مریضی زده و از طبیب خواسته داروی درمونش خوردن جیگر من باشه امروز قصاب میارن تا منو بکشن واسه این که تو نتونی جلی کشتن من رو بگیری میخوان وقتی که مکتب هستی منو بکشن امروز باید هر طور شده خودت رو به خونه برسونی و جلوی این کار رو بگیری من برای باخبر خبر کردن تو ست تا شیهه می کشم. وقتی شیه اول رو کشیدم یعنی قصاب و آوردن وقتی شیهه دوم رو کشیدم یعنی دست و پام رو بستن و وقتی شیهه سوم رو کشیدم یعنی کارت رو روی گلوم گذاشتن بعد در ادامه گفت صبح با پولی که پدرت بهت میده نخود و کشمش بخرا توی یه جیب بریز و توی جیب دیگت خاکستر و نقشه ای رو که کشیده بود به پسر گفت. نامادری چند لواش خشک پشت و زیر لباسش پنهون کرد و خودش رو به مریضی زد. مرد که به خونه اومد گفت زن چی شده چرا افتادی؟ زن کمرش رو تکون داد و لواشا خورد شدند. و شق شق صدا کردن. زن گفت حسابی مریضم استخونان پوک شده و داره خورد میشه منو پیش طبیب یا دعا نویس تا برای سلامتیم سر کتاب باز کنه و دوای دردم رو بگه مرد زنش رو پیش دعا نویس برد دعا نویس هم طبق نقشه قبلی به دروغ سر کتاب باز کرد و گفت دوای مریضی زن فقط خوردن یه چیزه و غیر از اون هیچ درمونی نداره. مرد گفت تو بگو دواش چیه؟ من از زیر زمین هم که شده باشه برای بهبودی زنمونو پیداش میکنم. دعا نویس، باز هم به دروغ نگاهی به کتاب انداخت و گفت بله خودشه. بعد سرش رو از رو کتاب برداشت و به مرد گفت دوای درد زن شما فقط خوردن جیگر اسب بادیه مرد وقت حرف های دعانویس رو شنید گفت پسر ما به اسب بادیش خیلی علاقه داره نمیشه که اونو بکشیم درد زنم دوای دیگه ای نداره زن با آه و ناله گفت یعنی این اسب از جون من مهمتره؟ مرد به ناچار قبول کرد پسر که توی مکتب خونه بود صدای شیحه اول اسب بادی رو شنید پسر با شنیدن صدای اسب بادی به ملا گفت اجازه بده برم دست شویی ملا گفت بشین مدتی بعد صدای شیحه دوم اسب بادی اومد پسر باز هم اجازه خروج خواست ملا باز هم گفت نه بشین صدای شیحه سوم که اومد، پسر یه مشت خاکستر از جیبش در آورد و ریخت تو چشم ملا و به سرعت از مکتب خونه بیرون اومد. ملا داد زد و به بقیه بچه ها گفت، اونو بگیریدش که کورم کرد. پسر فورا نخود کیش کشمیشار و ریخت زمین، بچه ها سرگرم جمع کردن اونا شدن و دوون دوون پسر به طرف خونه رفت. وقتی پسر دوون دوون به خونه رسید، دید قصاب کارد رو روی گلوی اسب گذاشته و آماده بریدن سر اسبه. جلو رفت و با التماس گفت: حالا که میخواید اسب رو بکشید، دست کم بذارید من یه بار سوارش بشم و با اون هفت دور دور حیات خونه بگردم. پدرش و قصاب قبول کردند و پسر سوار اسب بادی شد و شروع به دور زدن تو حیات کرد. قصاب هر دور رو میشمرد یک دو سه چههار پنج شش هفت تا قصاب گفت هفت پسر گفت از دستت رفت اسب بادی از روی دیوار حیات بیرون پرید و به سرعت از اونجا دور شد پسر برای اینکه کسی اونو نشناسه سر راه از چوپان یک گوسفند خرید گوسفند رو کشت و گوشت اون رو به خود چوپان داد و شکنبش رو روی سرش کشید و اسم خودش رو گذاشت حسن کچل. اونا رفتن و رفتن تا اینکه به یه باغ رسیدن. حسن کچل رفت پیش باغبون و گفت: "بذار اینجا بمونم و پیش تو کار کنم." باغبون قبول کرد و گفت: "این باغ مال پادشاهه." حسن کچل قرار شد اونجا بمونه و کار کنه. به بادی یه دسته از مو از یالش کند به حسن کچل داد و گفت هر وقت به من نیاز داشتی یه دونه مو رو آتیش بزن من فوری حاضر میشم تو باغ پادشاه هندوونه کاشته بودند و آخر فصل هندوونه ها رو میشکستند و هر هندوونه مربوط به یه دختر بود قرار شده بود هندوونه هر دختری که کاملا رسیده و قرمز شده شوهر کنه شبها حسنگچل شکمبه گوسوند را رو از روی سرش بر می داشت. موی یال اسب بادی رو آتیش میزد و بعد با اسب بادی توی باغ به گردش میرفت. توی یکی از این شبا دختر کوچیک پادشاه دید که این حسن کچل واقعا کچل نیست بلکه یک جوون زیباست که خودش را به شکل حسن حسنگچل درآورده و عاشق اون شد. آخر فصل و موقع شکستن هندونه ها شد. هندونه بزرگ رو که مال دختر بزرگ بود نصف کردند و دیدن سفید سفیده. گفتن هنوز وقت شوهر کردنش نشده. هندونه دختر وسطی رو از وسط نصف کردند و دیدن نصفش سفیده و نصفش قرمزه. گفتن تو هم هنوز وقت شوهر کردنت نشده. دو کوچیک رو نصف کردند دیدن قرمز قرمزه. و گفتن: موقع شوهر کردن دختر کوچیک پادشاهه پادشاه دستور داد تمام جوون شهر اونجا جمع شدن و به دست دختر کوچیک هم یه تخم و مرغ داد تا به سر هر کس که اون انتخاب کرد بزنه تا باش ازدواج کنه. دختر کوچیک، جوانایی که برای ازدواج با اون جمع شده بودن را نگاه کرد دید حسن کچل بین اونا نیست. گفت اون کسی که من میخوام بین اینا نیست. پادشاه دستور داد همه جوانهای دیگرم هم بیارن. مامورا رفتن و همه را آوردن. به حسن کچل هم دستور دادن و گفتن تو هم باید به قصر پادشاه بیای. حسن کچل گفت من به این زشتی و کچلی با دختر پادشاه چه دارم؟ دختر پادشاه که من رو نمیخواد دست از سر من بردارید ولی مامورا گفتن شاه گفته هرچی چی جوون تو شهر هست رو ببریم بالاخره حسن کچل مجبور شد همراه اونا به قصر پادشاه بره دختر شاه تا حسن کچر رو دید تخم مرغ رو به کله اون زد همه تعجب کردند ولی دختر میدونست دونست که اون واقعا که چل نیست و منتظر جواب پدرش موند. شاه به ناچار رضایت داد ولی برای اینکه دختر رو تنبیه کرده باشه گفت به دلیل انتخاب نادرستت باید تو طویله زندگی کنی. دختر قبول کرد و اسباب و اساسیش رو به طویله برد و اونجا با پسر مشغول زندگی شد. بعد از مدتی پادشاه مریض شد و پزشکای مخصوص آوردن. آوردند و پزشکای مخصوص گفتند دوای درد پادشاه خوردن گوشت آهوه. شکارچیان ماهر را برای شکار آهو فرستادند. حسن کچل هم گفت به من تیر کمون بدید تا برای شکار آهو برم. همه بهش خندیدند و گفتند <تصفيق> تو رو چه به شکار این همه زیر دست و نزدیک های شاه و شکارچی های کارکشته هستند که نمیتونن به راحتی آهو شکار کنند. حالا تو، حسن کچل، میخوای شکار کنی؟ اما وقتی اصرار زیاده حسن کچل را دیدن قبول کردند. حسن کچل موی یال اسب بادی را آتیش زد و اسب بادی فوری ظاهر شد. روی اسب پرید و پی شکار آهو رفت خیلی زود یک آهو شکار کرد و به خونه آورد. آهو رو کشت و گوشتش رو پخت و برای پادشاه فرستاد. دختر پادشاه با گوشت آهو آبگوشت خوشمزهای درست کرد و منتظر بود تا اون رو برای پدرش ببره. اما اول نزدیکان شاه بعد شکارچیا گوشت آهوی رو که پخته بودند پیش شاه بردند. شاه تمام اونا رو مزه مزه کرد ولی همه اونا تلخ و غیر قابل خوردن بودن و شاه نتونست هیچ کدوم از اونا رو بخوره. دختر شاه که فرصت رو قنیمت دید گفت حسن کچل هم آهو شکار کرده و من با اون گوش درست کردم بذارید براتون بیارم. شاه گفت گوشت بقیه که تلخ و مزه بود مال حسن کچل رو بیار. شاید خوب باشه و بخورم و مریضیم خوب بشه. دختر پادشاه یک کاسه آبگوش را ورد. شاه خورد و گفت خیلی خوشمزه است یکی دیگه هم بیار. کاسه دوم رو هم خورد و گفت بازم بیار. شاه کاسه سوم رو که خورد دید ته ظرف پهنه پرسید این دیگه چیه؟ دختر گفت خودتون ما انداختی تو تعویله اونجا هم که تاریکه و اینم یه دفعه افتاده توی قضا. شاه برای این خدمت و شفها پیدا کردنش دستور داد جای حسن کچل و زنش بهتر بشه و توی انبار ذغال زندگی کنند. بعد از مدتی دوباره شاه مریض شد و این بار طبیبای مخصوص گفتند شاه باید برای درمون دردش گوشت گوزن بخوره. این بار هم مثل قضیه شکار آهو و کمک اسب بادی و پختن آبگوشت و تلخ بودن گوشت تکرار شد و دوباره شاه آبگوشت گوشت گوزن شکار شده توسط حسن کچل رو خورد و این بار هم ته سوم یه تیکه زغال بود و شاه برای خوب شدن با گوشت شکار حسن کچل اونا را جای بهتری از انبار زغال فرستاد. مدتی بعد به پادشاه خبر رسید که کشور همسایه قصد حمله به کشور را داره. اون آمادی جنگ به اونا شد. حسن کچل هم پیش شاه رفت و گفت اجازه بدید منم توی جنگ کنار شما باشم. شاه گفت اونجا میدون نبرده آخه چه کاری از دست تو برمیاد؟ ولی حسن کچل به رفتن به میدان جنگ اصرار کرد. پادشاه که اصرارش رو دید قبول کرد وقتی به میدون نبرد رسیدند حسن که چل شکمبر را از سرش برداشت و موی یال اسب بادی رو آتیش زد اسب بادی فوری حاضر شد و اون با کمک اسب بادی تعداد زیادی از سربازای دشمن رو کشت و از خودش دلیری فراوانی به نمایش درآورد به طوری که توجه همه رو به خودش جلب کرد و همه به شجاعت اون آفرین گفتند در حین جنگ ناگهان تیری به دست حسن کچل خورد شاه برای دلاوری های حسن کچل خودش دست اون رو با دستمالش بست با دلاوری های حسن کچل دشمن شکست خورد و شاه پیروزمندانه به شهر برگشت و برای این پیروزی جشن مفصلی برپا کرد و همه را به جشن دعوت کرد توی جشن هنگام خوردن شاه گفت برای این پیروزی میخوام دست تموم مهمونا رو بشورم اون یکی یکی دست همه رو شست وقتی نوبت به حسن کچل رسید حسن کچل گفت نه امکان نداره شما پادشاهید و من حسن کچل نمیشه شما دست من رو بشورید ولی شاه گفت من عهد کردم به مناسبت پیروزی خودم دست تموم مهمونا رو بشورم حسن کچل به ناچار دستش رو بالا زد. شاه با تعجب دستمال خودش رو تو دستای حسن کچل دید و ماجرا رو پرسید. حسن کچل هم که چاره ای نداشت تمام ماجرا رو تعریف کرد. شاه به شجاعت و دانایی حسن کچل آفرین گفت و به حاضران اعلام کرد من دیگه پیر شدم و از این به بعد این دامادم پادشاه مملکت میشه. از اون به بعد سالهای سال دختر شاه و دامادش توی اون سرزمین سلطنت کردند و به خوبی و خوشی زندگی کردند.